آموختن وزیر مکر پادشاه را او وزیری داشت جبر و اشوده کوب براب از مکر بستی سد گره گفت ترسایان سایان پناه جان کنند دین خود را از ملک پنهان کنند کم کشیشان را که کشتن سود نیست دین ندارد بوی، مشک و عود نیست، سر پنهان است، اندرست قلاف، ظاهرش با تست و باطن خلاف شاه گفتش، پس بگو تدبیر چیست، چاره آن مکر و آن تذویر چیست، تا نماند در جهان نسرانی، نی حویدادین و نی پنهانی، گفت ای شه، گوش و دستم را ببر، بینیم بشگاف و لب در حکم مر، بعد از آن در زیر دارا ور مرا، تا بخواهد یک شفاعت جرم را، بر منادیگاه کن این کار تو بر سر راهی که باشد چار سو آنگه هم از خود بران تا شهر دور تا در اندازم در ایشان شر و شور.